همیشه راه دلم بر تو می شود مختوم همیشه راه دلم بر تو می مختوم دروغ و صدق و كلامم تو را بود معلوم صدای لطف مدام تو ای امام رعوف لطف مدام تو امام مکن لطف و دیدار خود مرا محروم السلام علیک یا علی بن خیلی متشکرم اتماع صدا دارم مجددن فرارسیدن عربعین حسینی رو به پیشگاه شما زایران و مجاوران و شیفتگان اهل بیر تسلیف و تحضیحت ارزمی کنم این بخش برنامه همچون هفته گذشته که با اقبال بسیار بسیار خوبی مواجه شد حضور با ورکت مهمان عالی قدر است که در خصوص موضوعاتی که مطرح شد در خصوص گیاه درمانی صحبت کردند. و امروز هم در خدمت این استاد حکیم فرزانه هستیم علامه محترم سید بزرگوار جناب آقای زیایی خوش آمد میگم تخلیت ارز میکنم فرارسیدن عربعین حسینی رو به پیشگاه حضرت عالی و همه سادات معزز خدمت شما و بینندگان محترم سلام ارز میکنم استاد روز عربعین حسینی رو به خدمت مولا صاحب الزمان با امت شریف ملت ایران که ولایت مهورن و احیاء شعائق حسینی میکنن و همه اینام عرض تسلیت میکنم خیلی متشکرم من می خوام که از محظرتون خواهش کنم پیش از این که راجب موضوعات تخصصی صحبت بفرمایید در خصوص فلسفه همین 40 و عدد چهل قدر برای اطلاع بیشتر ما و بینندگان بیاناتی بکنید یک کتاب ارزشمند تحقیقی در این زمینه هست کتاب الاربعینات مال آیت الله مرحوم شیخ, شیخ محمود اکبرزاده از علمای معاصر بودن و در دار حرم نماز میخوندن به مناسبت 100 من سال رحلت امام خمینی ام بنیاد های آستان قدس رضوی چاپ فرمود در اون کتاب واجه‌های ال 40 و منندنا از شیعه و سنی از تاریخ حدیث فقه روایات مختلفی اومده عدد چهل مثلا فرض کنید که رشد عقل ابلاغه 40 سنه که اتمام عقل کامل میشه حالا به صورت عقل فعال کاربردی نگاهش دارم یا مثلا بعصت انبیا و مرسلین مثلا فصل بعصت رسول الله در چهل سالگی برای هدایت امت اربعین یاد آور و پاستاشت و بزرگ داشته امام خوبی هاست در مقابله در مقابله با جمیع صفات رزیله زیرا که جریان حق حسینی بروز تمامی صفات حمیده در مقابل تمامی صفات رزیله احیاه اربعین حسینی یادآور این اصول ارزشیه مثل شجاعت لازم در ابراز حکم خدا و پایبندی به اصول ارزشین، برای تثبیت اسلام بلایی اسلامی که خدا از او راضیه و رضیتو لکم الاسلام دینا که پای گزاریش در قدیر خم بوده احیاء شاعر حسینی ایجاد و تثبیت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای منفی احیاء و شاعر حسینی در اربعین حسینی و مانند او تا و آشوران ایجاد و تثبیت اخلاق حسن است و دفع و رفع اخلاق رزیل است احیاء شعار حسینی از جمله اربعین حسینی ایجاد و تثبیت و ترویج سنت رسول الله و حسب سنت های جاهلین و سنت های وارداتی از قرب و احجا شاعر حسینی حاجقا از روی عملها از روی علم و یقینه از روی فرضیه بافی گمان زنی حساب احتمالات تقریب و سطحینگری نیست ازا ما امام مبین عبی عبدالله الحسین علیه السلام که میبینیم یا باب الحوائج ایوالله عبالفضائل عبالفضال عباس علیه السلام که میبینیم یا مثلا حبیب ابن مواهر زهیر همجور بیاین حتی بچه های کمسن مثلا فرز کنید عبدالله ابن الحسن قاسم ابن الحسن این ایتان امام حسن المشتبه. می بینیم همه کارهاشون از روی علم و یقینه وقتی آدم علم داره یقین داره در اصول شک نمی کنه که بخواد دین فروشی کنه یا بخواد اهل مسامحه و تساهل باشه یا بخواد اهل گاوبندی یا پرسان نسبت به اجنبی باشه اصلا در مقابل بیگانه کم نمیاره هر چند دشمن محاصره رو سخت کنه چه محاصره اقتصادی چه محاصره نظامی چون که علم و یقین داره به کار صحیح شک که در انجام کار صحیح براش پیدا نمیشه زیرا که همه مجموعه حسینی مجموعه با معرفتا. ازا تو روایات شیعه داریم که سالار با معرفت باش یعنی عملت بر طبق علم و یقین باشه حصل المعرفه احیاء شاعر حسینی افراد رو با معرفت نگه میداره خدای متعال عمل عارفانه را یعنی عملی که بر طبق علم و یقینه قبول میکنه حال اگر عمل افراد که از روی علم و یقینه تو توانه با اخلاص در عمل باشه و حالا این عمل رو به قبول حسن می‌پذیره همان گونه که از امام حسین علی عبد الله فذیرفته به نهر احسان از امت مرحومه‌ی پیرو ولایت حق که احیاگر شعائر حسینی از اینها هم به کرم و فضلش می‌پذیره ان خیلی مشکرم در محضر دانشمند محترم جناب حاج زیایی عزیز هستیم که ویاناتی رو فرمودن در خصوص فلسفه عدد چهل و عربعین حسینی هفته گذشته مطالب بسیار ای که سارلوت فرمودید در خصوص درمان برخی از بیماری ها با اقبال بسیار خوبی مواجه شد بینندگان عزیزمون تماسای بیشماری داشتن من تغازه میکنم چنانکه عزیزان بیننده پرسشهایی رو برای این گونه موارد دارند میتوننم فقط از طریق پیامک با در میون بذارن سی هزار و, بیست و پنج سامانه پام کوتانگ است که پرسش هاشون رو میتونن ارسال کنن همکاران من حتما و قطعا پرسش ها رو استخراج میکنن و پنجشنبه ها که در محضر جناب آقای قزی ایی عزیز هستیم مطرح میکنیم ان شاءالله پاسخشون رو خواهند گرفت علاوه بر این میکنم سایر شما به تلفن های سازمان رو در این راستا اشغال نفرمایید اگر اجازه می فرمایید بخشی از برنامه رو ببینیم مجدداً با طرح سوالات متعددی که پیش رو داریم در خدمت شما خواهم بود سپازو میکنم در خدمت استاد حکیم فرزانه جناب حاجه های زیایی هستیم استاد و مدرس گرانقدر تبرس سنتی، من رخصت میخوام پیش از اینکه پرسش‌های های فراوانی رو که پیش روی داریم مطرح بکنم توازا کنم از محضرتون که در خصوص ذکر درمانی هم برای ما و اطلاع بینندگان مصابت بفرمین در روایات شیه در بابهای مختلف مصادیق مختلفی ذکر کرد مثلا یک بار بحث اصابت العین یا چشنظر تو روایات شیعه هم در حلیت متقیم هم در مهج و دعوات سید ابن وقتی که از منزل بیرون میایی بخونید معوزتین رو سوره قلعوز رو براب الفلق و سوره قلعوز رو براب الناس رو. تا وقتی که به منزل برمی گردین از چشم هر چشم نظری در عوانی یه بار دیگه بحث حفاظت شخصی و حفاظت مجموعه با ذکر درمانی. باز تو روایات شیعه داریم مثلا اگر کسی از منزل بیرون بیاد تا وقتی که بره به محیط کارش اگر ده مرتبه سوره قل الله و الله احد بخونه از محفوظین مالش، جانش، آبروش، ناموسش، اولادش و مانند اینا همینا در حفاظت و پناه خدا قرار میگیره. زیرا که شناسنامه معرفی خدا رو ده مرتبه خونده این روایت در فروع کافی شیخ کلینی الله مقامه یا مثلا فرض کنید که اگر کسی از منزل بیرون اومد یک مرتبه آیت الکرسی بخونه دسته از ملائکه از اون محافظت می کنند. اگر دو مرتبه بخونه دو دسته از ملائکه اگر سه مرتبه بخونه خدای متعال به ملائکش میفرماید شما برین زاد کارتون خودم از بنده ام محافظت میکنن یعنی خدا میشه محافظ شخصی ایشون معلوم میشه کمترین حد ایمان قولی اینه که شخص سه مرتبه آیه الکرسی بخونه بعد از خروج از منزل و مستاق این آیه قرآن واقع بشه ان الله یدافع ان الذين خدا محافظ شخصی و حفاظت میکنه و بلاها رو دور میکنه و شخصون نگه میداره کسایی که مؤمنه بالفعله پس مؤمنین و مؤمنات عزتشون پایدار زیرا که ایمان عزت به فرد و جامعه میبخشه ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین مثل تعویل مؤمنین امیر المؤمنین علی علیه السلام اما طبق صالت و ظهور به متفاهم و عرف عام همه افراد مؤمنین مؤمنات رو به خاطر ایمان بلفعلش اون آیه هم که نسته از آیات محکماته که خدمتون گفتم حتی تو بحثایی علاج درمان اینها هم روایات مختلفی هم در طب بلعنه علام شبر هست هم تبل اعمه ابن بستان نیستابوریان هست که دکترهای مختلفی از جمله دکتر حسین صابری ترجمه کرده یا بعضی مطالب که در تبل اعمه اهل بیت هست دکتر محمد دریایی بعضی فرازها رو ترجمه و توضیح مفید داده یا تو بحث نسخه های امامیه هست محقق توانان موسوی در اون کتاب بیان نموده و کتاب های دیگه مثل مصباح کفعمی هست از علمای قدیم و همچنین مفاتیه نوین آیت الله محقق توانا حضرت ناصر مکارم شیرازی هست حتی محدث بزرگوار و فقیه عالی شیخ عباس قومی تو همین مفاتی الجنان به از این کرد از علمای لبنان، مصابیح الجنان که 60 بار پیش از شست تا کنون چاب شده بعضی روایات رو آورده بخواستم بگم تو این بحث استشفا مثلا به تربت عبی عبدالله الحسین علیه السلام، الاسطشفا به تربت الحسینیه از افتخارات شیعه اصناعشرینه که به نصوص قرآن عمل میکنه انسان که از خاک آفریده شده و بدنش به خاک برمی گرده سجده بر خاک پاک می کنه. این از خصوصیات شیه اصناعشریه و بهترین خاک که خاک بهشده تربت حسینیه و این از افتخارات اختصاصی شیه اصناعشریه در روایات مختلف هست الاستشفاء و بتراب الحسینیه قصد استشفاء مصنم تراب الحسینی تو لیوان میریزه یا پاش خوش آب میزنه هم میزنه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنم که این تهنشین بشه کاملا بعد به قصد استشفاء از این آب میخوام بیماری های مختلف درمان میشه تو بحثه دیگه هست مثلا حسن استفاده از ذکر شرعی مثلا اگر کسی سبحان الله میگه لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله العزيز العظيم يا اللهم صلّي على محمد و محمد يا اللهم صلّي على فاطمة وأبيها وذالها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به المكي حالا انجا تربت حسّيني شلو مؤمن دعویه تسبیه یعنی خاکی که از توربه امام حسین عدایت با این زیک میگه اینجا همون ذکره اما هر ذکری که میگه هفتاد برابر ثواب داره میگه این ارزش افزوده بازده و راندمان مفید ذریب بهرهوری صحیح رو از زمانی که در اختیار داره به نه احسن استفاده میکنه جام میکنه خیلی متشکرم من اجزای میخوام زحمت کشیدیم دستاوردی که انایت فرمودیت رو خدمت بینندگانمون قرائت بکنن در همین خصوص که اجازه یاری ازمون مرقوم فرمودن مرحوم شیخ کفعمی در کتاب مسباح فرموده هرگاه بیمار شوی به محل سجده خود دست بمال و آن را هفت بار پس از نماز فریزه بر موضع درد بمال و بگو یا منکبسل ارزه علالماء یا منکبسل ارزه ما که سه چهارم زمین آب است و یک چهارم آن خشکی است خیلی مشکرم، ازید می فرمید پرسش هایی رو که دفهم. به دستمون رسیده خدمتون مطرح بکنیم بینندگان عزیز و عرض من درمون تغازم بکنم با سمانه پیام کتای 3625 فرمشاتون و پرسشاتون رو مطرح بکنید یه بخشی از راه های درمان ایم ایس از طریق تب سنتی و گیاهی باقی موند اگر ازید می فرمید ادامه اون مبحث رو پرداد و دیگر, دیگر سال ها رو در خدمتون هستیم در کتاب علمی جدید و طب مکمل مطالبی درباره بیماری ام اس گفتند. یکی بحث تسلل متعدد شریان مغز یا روماتیسم ستون فقرات یا مالتیپل اسکلروزیس. بعد اینها میگن عاملش میتونه ژنتیکی باشه یا عاملش میتونه ویروسی باشه. ولی بین دانشمندان جدید و قدیم و بین جدیدها اختلاف مبنایی هست در درمان پزشکی جدید داروهای کرتندار تجویز میکنه درمان واقعی نداره تو طب مکمل بعضی چیزا هست ولی احتیاط تام باید کرد مثلا نوشیدنی چای کامبوجا اینه آوردن و او سیه تقویت اعصاب و زد تسالب شرائن و اینها اما اینجا باید دقت لازم کرد در تهیه و کاشت و داشت و برداشتش زیرا اگر کوچکترین آلودگی باشه این نوع چایی ایجاد لخته سراسری در گردش خون میکنه و مرگ شخص حتمیه من تو تحقیقات مقاله های دیدم حاجام که اینجا حتما باید کاملا بهش داشتی باشه گرچه این از قبل تو تبل چین و طب ایران باستان بوده مطلب دوم گل رای یا چای کوهی مصرفش با اصل بیس دقیقه دم بکشه و مخلوط با اصل آبیشن نعنا اگر کسی تجمع مایعات اضافی بافتی داره با اصل استخدوست داروی سوم گل باهار نارنج با اصل این گل راهی صبح میخوره با اصل، این گل بحار نارنجو و شب اول مغرب میخوره با اصل. تا اینجا که خدمتون گفتم، اینها از طب مکمل و بعضیش از طب جدید. تو روایات شیعه مطالب ارزندهی داره که ما هم پیشگیری کنیم، هم درمان کنیم تسلط شرائین رو. یعنی حالت الستیک رکه برگرده رسوب اضافی در جدار رکه باقی نمونه تا تسلوب متعدد شرائین مقد یا بیماری ام پیش نیاد و یا اب بین بره یکی از فرمایشات معصومین مثلا نوشیدنی آب سید و شراب فی الدنیا و الاخره الماء سردر همه این نوشیدنی ها در دنیا و آخرت آب آشامیدنی ساله، یا مثلا مصرف آب جوش ولرم شیعان صالحان للبدن ماء الفاتر و اکل الرمان دو چیز همش به نفع بدن آدمیه یکی مصرف آب جوشیده ولرم دوم مصرف انار میوه انار بعد این آب جوشیده ولرم دو جوره یه بار شرایط عادیه آب به نقطه جوش برسه پنی دقیقه بجوشه بعد شعله رو خاموش کنیم و هم که شد نیمگه هم که شد حالا یک لیوان مصرف کنیم. اونم به صورت میکیدنی نه اینکه قورت قرد قرد بخوره مصن مصن لا عبن عبن امام صادق به فرماید بمیک بمیک بخور قرد قرد نخور یورس الکباد دردهای کبدی و نارسایی غیر ازمی معده میاره یکی از اشتباهات متدابل در بعضی از مردم اینه که یک نفسه میخورن آب و آشامیدنی دنیا و اینا ها دوچار نارسائی های غیر عضوی معده میشن خب این دوتا روایتی که گفتم در کتب مختلف شیعه هست از بهار علامه مجلسی جلد 66 از وسائل شیعه شیخال عاملی جلد 16 چاپ اسلامی تران. از جامع احادیث شیعه آتش لزما بروجردی قم جلد 28 کتاب مستدرک محدث نوری جلد 16 بحث اطعمه و اشرابه و کتاب دیگر روایی مثل الکافی فلفق مولا عبد الصلاح حلبی از علمای قدیم پس یکی از دستورات اسلام چیه؟ که پیشگیری و درمان تصلب شریان بشه، درمان فلزت خون بشه، گردش خون راحت باشه، و فرد و افراد از قرص آسپرین بچه 80 میلی گرمی بی‌نیاض بشن. و کم کم مصرف وارفارین رو کنار بگذارن، مصرف هپارین رو کنار بگذارن که اینا از بین 7 تا 14 بیماری میاره. این پوسایشی میانی که اونم مت شده در بین مردان. مثلا هم میخواد خونش رقیق کنه هم خونریزی معده میاره این قصهی که شماردن آسپرین بچه وارفارین اپارین. هم آسم تنگی نفس میاره هم خونریزی معده میاره هم کاترک و آب مرواری در چشم میاره همجه ادامه حتی اولین اثری که از وارفارین به جامعی مونه این پوستاشون ترک ترک میشه و افونت میزنه بالا بلا تشبیر بلا نزیر کسی که ماده افیونی کرک میخوره اسهقات قهوا در اروپای غربی مردم آمد در کتابای تخصصی مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مثل پروفسور پیتر کوپر ترجمه دکتر محمد در ترجمه دکتر فرخ سر سال ترجمه انتشار 1961 حاجی اونجا تو قسمت وارفارین میاره میگه در اروپای غربی این داروی مشکشه حالا معدوم به عنوان رقیق کننده خون داروی مشکش میخواد. این چه کاری هم اگر میخوایی قلیزت خونتو درمان کنی به شرایط درمان کنی و کمک به این درمان ام بشه، آب و آشا میدن یه ساله آب جوش بلن خام ریواز عناب اینا همه رقیق کننده های خونه حالا هر کدوم تو منزلش بود اینا رو استفاده کنن مطلب سومی که در روایات شیعه اومده میگه اصل, اصل آبیشن نعنا رقیق شده در صبحها یا اصل باهار نارنج یا مسقطی باهار نارنج صبح یا شب یا مثلا سویق تفاح یعنی آبستی با اصل گرم یعنی با عسل آبیشن نعنا و تو مستدلک محدث نوری داریم روایت ان العسل من كل سم حالا تسلب شریان و فشار خون هفت نوع دوست شما مؤمنان حالا تو مباحث ما که بحث ام اس اینجا عسل نعنا یا رقیق شده صبح میخوره محلول در آب ولرم یا آب یا شیر تازه گاو کم‌چرب کم‌چرب اصال بحار نارنج یا مسقطی شیراز، جهرام، سیرجان جان اینا هست که از شیره خورما و گل بحار نارنج خیلی هم خوشمزه است یا مربای بحار نارنج از شمال هم میان دیگه قاشو پلو خوری میخور. حالا اگر هم این باشه هم دیابتی حالا اینجا مربا رو با شیره تود درست کنه که کمترین این خنده داره این بحث سویق تفا سیب رنده شده یا آب سیب رو با اصال گر مقوی عصاب و یازده فائده داره اون آویشن هم 11 یازده فائده ترووایات شیعه گفته یکیش هم ضد تسلیب شراعینه خیلی متشکرم حتی ببخشید در مصرف تخمماغ یا کوکوان ترووایات شیعه امام صادق میفهماید به همراه پیاز بخورن هم چربیش اب میره به قول امروزی یا LDLش کلیسترول بدش اب میره. هم ضد تسلیب شراعینه بسیار متشکرم حتی پرسش های بیشماری هم داریم سرمخوردگی های فصلی رو خواستن که بفرمایید در خصوص سرطان ها سرطان معده که شایی هست سوزش معده برای قند بالا چه کار باید که تب مال چیست و چسبندگی روده بانوان به با خاطر زایمان چه درمانی داره برای درمان اوفانت کلیه چه داروهای یه خوبه در خصوص پوست و ککمک هایی که بعد از جای سوختگی ایجاد میشه برای درمان کیست تخمدان ترشی مده که ارشد کردم برای رشد قدی فرزندان حالا در حال بلوغ و آیا هجامت قدی صحت یا خیر برای افرادی که گرفتگی عروق قلبی دارند و کیست تیروئید و قیلزت و خونم که اشاره فرمودید اینا پرسش است که مطرح شده عزیزی میخوام که یه بخشی از برنامه رو ببینیم و انشالله چشم. فراخول زمانی که داریم در خدمت شما خواهیم بود چشم. روز به خیلی التماس دعا دارم در محضر با برکت استاد حکیم دانشمند جناب حاجاوی زیایی عزیز هستیم از سادات محترم و استاد مدرس طب سنتی من خواهش میکنم سوالاتو رو مطرح کردیم پرسش های متعدد و بیشماری به دست ما رسیده سامانه 3625 در اختیار شماست تغازه میکنیم شما تلفن ها رو اشخال نفرمایید انشاءالله به مرور و به تدریج مطرح میکنیم خب اولین موضوعی که علاقمند هستید در خصوص تفضیح مال رشد کودکانشون آغازاده دختر خانمه هاشون نوجوانان و جوانان اول چیزایی که مانع رشد میشه بخورن. مثلا قند های شیمیای. ایجاد اختلال در رشد قدی کودکان و نوجوانان و جوانان میکن زیرا که قند های شیمیای قند، شکر، شنجات قندادی ها اینها ها بدن رو کم میکن نوشابه ها هم جز بچن بله است ها دو بدی هم داره تا بیست تا. حالا تو مباحث ما هم قند فشارده داره مثل ساکاراز اینها ها هم اسانسای های شیمیایی مانع جذب کلسیان فسپار میشه هم خونه ترش میکنه یعنی بلغم سیاه به قول امروزیه اوره اسید اوری که خونه بالا میبره زریب نقرس در افراد زیاد میشه پس قندهای های شیمیای. شیمیایی اوسانس های شیمیایی هفتاد 20 تا بیماری میاره یکی مشکلات هورمونی از قرده هیپوفیز قدامه مغز میشه کمکار میشه هرم گایی متوقف میشه یه مطمئن بچه مردم همجور کچیلیو میمونه با اینکه که نارسایی جنتیکی نداره اما قدش بسیار کوتاه میمونه به خاطر این بدخوری قندهای شیمیایی حتی همین قنده شیمیایی ها سبب تضعیف پانکراس لازل مهده میشه یکی دیگه از چیزها مصرف بیرویهی کافئین زیاده مثل چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس مثل چای احمد، قهوه، شکلات، کاکاو نسکافه، چایهای عطری منظور فهمید. بله بله. میشه ما از شود که یکی دیگه هم مامنا ترانس چربی بالا به نوع مصنوعی مثل خام سرشیر که خامه‌ای رولت، نارنجکی اینا که مد شده سس ها انواع سوس ها اینا همه آسیب میزنه هم به دستگاه گوارش هم رشد قدی ولی برعکس بچه ها رو به عرض میبره یعنی چاقی مفرد حالا زندگی شهری کم تا هر از چاقی مفرد هم بیاره خودش باز نه تا بیماری میره پس اینهایی که سبب کوتاهی رشد قدی بچه ها میشه تو منحنی رشد اینایی که بدتر کنه پنجا درصد خوب شد حالا چیزایی که باشته قدیم مثلا مصرف پودر مغز بادام شیرین درختی خام دندوناشون سالم بهجان جان بهتره. خب فندوق خام، پسته خام، بادام هندی خام، مغز بادام شیرین درختی خام، خورما، اصل. این چیزا تو قضاهاشون باشه. به با عنوان ریزم و قضی ها میان وعده های قضایی. بین قضاهای اصلی این بچه بخوره. بچه که مخصوصاً سوء تغذیه دارن. یا قندشون زیر هفتاده. یا کالریشون زیر دویست دویزار و دویسته. نوجوانان و جوانان. یا مثلا فرض کنید افت شدید فشار دارن. همیشه فشارخونشون زیر دهه. زیر نهه. خب اینا سرگیجه دارن. چشماشون سیاهی میره؟ بدنشون دائما من کسلیشون زیاده، خابالو دیگه شون زیاده. پس هم ویتامین ها، هم املاح، هم خون نرمال بین 70 تا 90 برای نوجوانان و جوانان. و هم مؤمن ها تو بحث کالری لازم برای بدنش دریافتی از خورما و اصل اینا حالا بدن خودشون و بچه ها رو, رو روی فرم نگه دارن. چون تغذیه یکی از عوارض کاهش رشد قدیه هم کاهش رشد استخونها رشد قدیه افراد تا سن 25 سالگیه و رشد ارزی استخونها و تراکم سلولای استخوانی تا پایان سن 35 سالگیه بله خیلی ده سال بیشتر بله. ممنونم و چکرم یه موضوعی که الان متناسب با فصل میتونیم مطرح بکنیم این و خوردگی ها و آنفلازه های شایع فصلی است. تو این برودت هوا حالا یه مقداری هم میگن آلودگی هوا هم خوب زیاد هست خواهش میکنم بفرمید که چه داروهای گیاهی مناسب هست برای رفروزوی این مسئله در فصلی که سرد و خشکه یا گرم و خشک یا تکسیر ویروس های سامخوردگی یا آنفولانزا یا سارس زیاد. در این فصل آبریزش بینی، عشقریزی چشم، گرفتگی سینوس، گرفتگی سینوس های فوقانی مخصوصا، بعضی چیزها رعایت نکنه، عفونت های سینوسی. بعد مؤمن درگیری حلق، ابتدای حنجره، پشت زبانک، لوزه های جانبی، لوزه سه سمانند این ها زیاد حتی صرفه های خشک مکرر توعن با خشونت در صدا صداشون اذیت میشه اینجا چند چیز رو باید کن. یکی این که پشت پنجره و پشت در نخوابن روایاتش نه کرده. چون محل جریان های سرد هوایی سریع کلیه هاشون و سینوس های فوقانیشون درگیر میشه کلیه ها و سینوس ها سریع سرمان ها ازا مستحبه هنگام خواب پیشونی رو ببندن حالا با روستری چفیه هدبن کمرشون دارشون رو دارشون ببندن که سینوسای های فوقانی و همچین کلیه ها سرما نخوره تبه کلیه نگیر دوم این که مومن مستحبه اونایی که بالغن قبل هر وضوح بینی خودشون رو داخل بینیشونو رو با آب ولرم با آب ولرم بشوند در همه فصول سال داغ نباشه سرد تگری هم نباشه چون با آب سرد تگری شستن داخل بینی سبب تکسیر آمیب و رسیدن آمیب به مغز باعث قتل انسان میشه نه در بحث‌های فوق تخصصیه میکروبیولوژی تحقیقاتی و مولکولین مثل جاوید، آدلربرگ، دکتر اطهرین، دکتر محبی، دکتر همتی و متراشه پس این شستن بینی در همه فصول سال با آب ولرم این خیلی مهم مهمه مامه سوم اینکه در محیط منزلشون بخور پیاز بخور پیاز یا بخور اوکالیپتوس باشه اگر محلول اوکالیپتوس از داروخانه خریدن هر 6 ساعت 20 قطره داخل این دستگاه بخور اگر بچی کوچیک بازیگوش ندارم، حالا یه ظرف روحی روی بخاری روشن فصل زمستونه توش هم آبه هم مقدار رطوبت محیط اتاق حفظ بشه تا سوزش در مجرای تنفسی پیش نیاد و همین که هر 6 ساعت 20 قطره اوکالیپتوس، بیز داخل این زر این بخور اوکالیپتوس چندین خوبی داره از جمله هم سبب باز نگه داشتنه کیپ بینی میشه می درمان میشه پیشگیری هم میشه سینوسا ها باز میمونه و ششهای فرد مخصوصا حبابچه های هوایی ریه برانش ها اینا متصعه میشه دریافت اکسیژنش بیشتر میشه و بهتر حالا استاد اومد فرد مبتلا شده رایت نکرده چه داروهای گیاهی تجویز میفرمید؟ داروهای مثل ماهور یا ماهور و گل پنیرک یا مثلا گل و برگ افتابگردان یا مثلا آویشن و نعنا اون دوتایی که اول گفتن دو نسخه اینا در درمان زاترگیه بسیار مفیره این یکی سوم که گفتم کسانی که سرفه های خشک مکرر دارن و سرفه هاشون عصبیه اینجا دم کرده یا جشونده آویشن نعنان بسیار مفیده خیلی سفاس گذار سلام. خب فرصت ما خاتمه پیدا کرد علاوه بر این که پرسش های واقعا متعددی پیش رو داریم و علاقمند هستیم در محظر شما باشیم بینادگان عزیز و بزرگوار سالاتشون رو از طریق سامانه پمکوتای 3625 با ما در میان بذارن اینشالله هفته آینده پنشمبه هم در محضر استاد دانشمند محترم جناب زیایی خواهیم بود بسمت. از کشف فرماییتون سپاسگزاری گذاری سلامت باشیم قدرانی میکنم باشی. مجدداً می مجددن فرارسیدن عربین حسینی رو به محضر حضرت علی سادات محترم و جامعه روحانیت تصریحت میگم سلامت باشیم خدا همه شما رو با آفیت و امنیت بداده. در دنیا و آخرت عزیز و پایدار باشین و با چهارده معصوم مشهور باشین خواهش میکنم. می‌کنم سپاسگزاری می‌کنم خواهش میکنم دعایی بفرمایید که ما این بحث برنامه رو خاطرمون صلوات بر صدقه فاطمه و ابی ها و بله ها و دنی ها و سر المستودعی فی ها به عدد ما احاط به علمک خدایا حوائج حضرت زهرا حوائج چهارده معصوم حوائج <تصفيق> مولا صاحب زمان رو به کرم و برابر خدای حوایج امام راحل رهبر معظم انقلاب حوایج این امت مرحمه ملت شریف ایران رو به نحوه احسن به کرم و برابر ایشان و نسلشان را زرریه طیبه قرار بده ایشان را در زمره احیاء کنندگان شعائر حسینی قرار بده و از همشون به نحوه احسن به کرم و قبول بفرما اللهم صلی علی محمد سلام محمد عجل فرج خیلی متشکرم از واسطه شما به گردانندگان عزیز دعوت میکنه باشه بعدی برنامه رو ملاز